هر که با دشمنان صلح میکند سر آزار دوستان دارد یک خردمند از آن دوست دست که با دشمنان مطبوت هم نشاست